کتاب قانون نویسنده محمد رحمانیان کارگردان مازیار میری بازیگران. پرویز پرستویی گفتم میخوان به کلز بولا رو بدوسن دارین حمزه گفتم غم تو دارم گفت تا گمت سرايد فریده سپاه منصور عمرن من پسرمو بدن بده دستم چین زنید داوود فتلی بیگی باز میدان رو دادو نپرسین اصلا مسترب چطور بود. آب داد سید مهداد زیایی پشت خوک چیه توجه بفرمایید نمیشه بیف موسیقی محمد رضا علی قلی تهیه کننده محسن علی اکبری روز خانه رحمان مادر خاله امه و دو رحمان میمنت و کوکب دور هم نشستن و عکس دخترایی رو که برای رحمان کاندید کردن به هم نشون میدن و در موردش اظهار نظر میکنند. ولی ما فقط دستاشون و اکسا رو میبینیم این کیه هاج خانم همین قدر بلنده چش و دختر دختره هاج موساس باباش نوزده تا جدستقیر با شیش تا پسر قلچه وای دق میکنه داداش رحمانه مگه میخواد با داداشاش وزلت کنه و عمی جو تفری داداشم یه به دختره بگه بالا چشه؟ عروس میریزن رو دی بزن. بزن. چه غلطا؟ مادر نزایده که سرو بچم دست بلند کنی. خب حاجی این چطوره؟ دو تا میشه گفتن؟ من تو هموم دیدمش. دنده هاشو میشه آی اون دو تا استخون ترقووشو چرا نه؟ هم دیگه 20 کیلو هم نمیشه اونم با لباس. یه حرفا چی‌هاست خانم؟ شما میخی عروس بیاری یا قصابی و؟ عروس باید وقتی مادر شوهر نشکونش میگیره یه همچین تو دستش بیاد. پس این خوبه. همچین من پسرم با همچین زنی. هفته بچه کی میگونم دقیقش اون از لحظه حاج خانو از لحظه کاری بچم اصلا پشا باید کار کنه چه گلاپتا واقعا هم میگم همین زری خوبه به قران نه شاقه نه لاغره نه شیش تا داداشو قلچماق داره نه میگم حاج خانوم همین عفت دختر اسمت خانم رو برید صحبت کنین به خیر خوشا همین چی تموم شه ان شاء دختر اسمت خانم نیست و افت دختر اسمت دختر عفت خانمه. بعدم مگه شما خبر نداری اینا خانوادتا نشینن پای ما خانم صیدی با چچای خودش دید اونم کانال فارسی اون از دم سر درخنه لختم خدایا توبه توبه توبه پانتای حاجی مروتی هم خوشگله ها مادر دختری که اسم خودش رو بزره پاندور ماما پانتا حالا هر چی مگه اخترچی بشه میگه از بس دادم زدن در اختاف میافتم چه ها مگه مسجدان دای عباس نیست همهش صداش میزنن موج آها همین موجی خوبه کوچش اینها اینها فقط یکم دهنش یخی مگه نه وا دهن یخی تو عکس نمیافتام بجو خب مادر بخور مادر اكس الرحمنه که تو چت انداخته نشون میده. بالا رو نگاه کن هاج خانوم. هی این بچه نیست تا این سن عسب مونده به من میگی آبجی وقتی رو هر دختری گهعه بزاره من چه خاکی سرم بریزم مذیت داره هاج خانوم. هر شبیه که پسر تنها سر به بالین بذاره یه گناه به کارنامه اعمالش اضافه میشه شبیه یکی یا هفته یکی یکی خانوصدیق میگه هفته ای یکی حالا چه شبی یکی چه هفته؟ یکی چه سال یکی؟ چ دست دست میکنیم مامان؟ یکم دندرو جگر بزارارین یکی وسهش پیدا میکنم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> روز اتاق رحمان هیچ تو اتاق نیست عکس رحمان تو کامپیوتره این منم رحمان توانا اینم که بغلش اسمش خمسه خمسه است خمسه خمسه اسمی یه جور سلاهی که تیراش و پنجتا پنجتا پرتاب میکنه اما اینکه چرا من قصمو با خمسه خمسه شروع کردم در واقع دلیلش اینه که دادش رحمان اومدن روز حیات خانی رحمان در حیات کامل بازه همکار رحمان تنخواه کنار ون جلی در منتظر رحمانه شما تا حالا چیزی درباره دفتر پژوهش‌های های علوم انسانی شنیدیم. این اسمی مرکز با اهداف بین مللی سفر گروه ما هم به همین دلیله ما داریم میریم ده... رحمان بجم برادر بیر شد مادر عمه خاله میمنات و کوکب و چند زن دیگه رحمانو را میندازن ون حرکت میکنه رحمان از شیشه پشت ماشین به نشانی خداحافظی دست گم میده و اثر میگذره فرودگاه امام رحمت الله علی، سالن ترانزیت. تصویر فقط پاهای رحمان رحمانو نشون میده که یکی یکی از گیت رد میشن و ساکاشونو برمی‌دارن و گروه ما متشکل از مهندس آنور گیلکلایی، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، مهندس نوزر افراسیابی، معاونت فرهنگی پیشنهاد کرده مهندس امیر کاووس وطن‌خا دوست و همکار مهندس امیر کاووس دوست و همکار قدیمی بنده در مرکز مطالعات مدیریت راه و خود من مهندس رحمان توانا کارشناس کارشناس سلام علیکم سلام از بنده ساجه ها شما قرار تشریف از مرکز بهتون خبر ندادن آقای هرش نجات به تازگی از یه جای دیگه به مرکز ما منتقل شدن و ما از در فرودگاه کلی خواهدید شدیم روز هواپیما از آسمون به طرف باند فرودگاه میاد سرعتشو کم میکنه و روی باند میشینه سالن ترانزیت بیروت. توانه او همکاراش ساک به دست به سمت در خروجی میرن مرد جوونی رو میبینن که پلاکارت ایرانیان گروپ رو به دست رو به طرف اونا میاد و میگه وا آخره آقایون گل گلاب بونجو عرق بیدمش شما جان هستین جان دلم خودم هستم چیقش شماقا من کدوپیت شوکرش شما در است زنگ موبایل جان الو ای دوانی... شهر بیروت جان توانه و همکاراشو سوار بن کرده و در حال رانندگی داره شعر میخونه کنار خیابون اکسای تبلیغاتی و چند عکس از رهبر الله لبنان سید نصرالله الله رو میبینیم توانا لبخند زنان سر تکن میده و با جان همراهی میکنه تنخواهم همینطور هرسی نجاد به هر دوشون اخ میکنه و منظورش اینه که خودتون رو جمپانیم آی لیلا خند بخندوان زای لیلا فخر آی لیلا فخر فارسی از کوچه یاد گرفتی اونم به این خوبی اسمال با وفا کی واشن این عزرت بچه با خط حلب با من قفی جون جون آه منو میگی ما داد کمو ده تصادف بود این واسه تو رومز جولی هتل هر از و بقیه توی ون نشستن و منتظرن جانو و از در هتل میان بیرون چی کن؟ اوزاکش میشی چی میگی؟ میگن از در امنیتی به سالانیسی گروه خارجی اینجا قامت کنه. یعنی غمق در شما اجادتاً فارسی بلغور نکن جان دل غد ششن. پس نکلیف چیه؟ مادر زلن گفت نرو اسرایی تهدیداتی کرده نامت آماده باشه چه تهدیدی گفتن میخواند دبیر کل اسبولا رو بدوزن زغ زدن خا مادر جان با تعجب به جان نگاه میکنه پیشنهادش که بریم یه جایی دیگه ای بریم چاره ای نیست جان جان دلا تو یه هتل مناسب سراغ داری که جاشم هم باشه بغو که رفتیم جان میره پشت رول می‌شینه و تووانام صندلی تاشوی منو درست میکنه اون می‌شینه حرکت میکنن. منطقه مسیحی نشینه اگر جنگ سی بشه اسرائیل اینجا نمیتونه بزنه خیار راحت شب لابی هوتل طبانه از دستشوی لابی میاد بیرون دستمال کاغذی دستشه در حالی که دستشو خوش میکنه به طرف پذیرش هوتل میره چطور تو بود؟ آجه آب با آب که میشم بعض میده و, و هم میزه بعض میده تو نپرسیدم نپرسینم باستم چطور چی تو بود آب داشت دست در گوشش میگه قمت نباشه این پلاسیکی آوردم با شیرنگ و مخلفات و خودم خوده درست نیست بابتی شیرنگ دقیقه به دقیقه بیم در اتاقتون بکر اونجا شم کردم و شما با هم دیگه آتاق پرسی کلید کار نشون میده و میره حافظ چه قسمت ازلی بی حضور ما کردن گرندکی گرندکی خلاصه خوردن مگیر شب پر استورانی هتل توانا و همکاراش داره میز نشستن و همه منوی غذا تو دستشون و میان غذا سفارش بدن پیشخدمت کنار میز ها جو واج ایستاده و به اونها نگاه میکنه میبینم که آقایون دارن گوشت خوک سفارش میدن چه فرمایشی هاجا گوشت خوک چیه توجه بفرمایید نمشته بیف آی تاوانو بالاجا به این هاجا ها جواب بفهمون که ما گوشموش تو کارمون نیست کلهم یاخالی چطورجا آخه اینا کی ذب میسرشون نمیشه سر فسق قضا معصیت کار نشی آخه هاجا هاوانو بگو چشمشو پلیز اه... مين عند پوتيتو پوتيتو جاست وشتبل اسکواش دایٹ جانا این دایت که گفت یعنی چی هاجا فکر میکنه ما تو رژیمی نه خبی تو رژیم نیستی مسلم کله هم گیا پیش خدمتی تو میز کناری ظرف قضایی رو میذاره گوشت و سایر مخلفات همه توجهشون به اون جلب میشه هر از سیناشو صاف میکنه یعنی سرتون به کار خودتون باشه همه اطاعت میکنن <تصفيق> <تصفيق> شب اتاق هتل. همه فرمایت الجنوتی الجنو یتشک کرو به اشکال مختلف یعنی چی؟ توانو با لپتوکش داره مطلب رو میبیسه هر از اینجور رو باز کرد و داره لبسش رو در میره نه خیر آقا یعنی جن خودش تو به هزار و یک شکل در میاره حتی مم. کلب و خنزیر یعنی سگو؟ چقدر گشنمه؟ خورخوری خوبی نیست توانا اونم توی این سفر خورخوری کدوم حاجی آقا من 18 ساله هیچ چی نخوردم پس اون شام 148000 لیر رو همه‌شو من خوردم دیگه آره من سبزیجات دوست ندارم از بادمجان بدم میاد از کدوم متنفرم کلم پختم حالم و حالمو به هم میزنه چطور خنزیر حال تو به هم نمیزنه اون وقت کلم پخته حال تو به هم میزنه خنزیر چیه همون گوشت خوک سگمساب که شما می‌خوستین ولومونین جن دوشه گوشت خوک کجا بود حاجی آقا شماره 16 نوشته بود بیف حلال ما که ندیدیم گاو و گوسفندی که زبه استامی نشه بیف نیست پیفه بچه مسلمون بخوره جن زده میشه جن زده یا مجنون شما هنوز جوانی جناب توانا حکمت خیلی عرفارو نمیدونی این جن نباید دست کم گرفت همچی آدم گرفتار میکنه تنگوش به دهن میدونی هر از این با حوله و آفتابش به طرف دستشوی میره سگ میشه خوک میشه بلانست و زن آدم میشه گشنگی و میده درد از یه طرف حرفای آقای حرسی نجاد از یه طرفی دیگه و برید گفتم بزنم به دل شبای بیرود و از توانا از در خروجی هتل میاد بیرون چند قدم میره بعد بر رو به بالا و به تابلوی هتل نگاه میکنه و اسم اونو خوب به خاطر میسپره هتل کراون پلازا از اونجا دور میشه از خیابون میگذره و به سمت رستوران میره تنخواه اونجا سو داره حسابی میلونبونه که یهو توانا رو میبینه. توانا روشو برمیگردونه و از اونجا دور میشه. تنها بیخیال همچنان در حال لبوندنه. توانا به سمت رستوران بزرگ شیکی میره و در اونو باز میکنه. داخل میشه. ای ای ای اون دوتا تا مهندس هم اونجا رو غذا میخورن. بدون اینکه اونها متوجه بشن سری میاد بیرون. توانا وسط خیابون نیستده و نمیدونه چیکار کار کنه و کجا بره که یهو رستوران کوچیکی توجهش رو جرد میکنه به طرفش میره در رستوران سنتی و گمدی شکل و پنجرهای زیادی داره در رو باز میکنه و لایه در میسته پیش خدمت زن سیاپوست جوونی سعی داره مرد مست میانسالی رو که سیگار و نوشیدنی دستش و کنار میزش نشسته از رستوران بیرون کنه توانا وارد میشه و در رو میبند و به سمت میزی میره پیشخدمت، خدمت زرفا رو جمع میکنه و میره توانا میشینه فضای رستوران گرم و رمانتیکه. سه چهار تا میز بیشتر اونجا نیست رو میزی ها و تمیز و مرتب به نظر میرسه مرد مس تنها مشتری اونجاست همون پیشخدمت خدمت سیاه به طرف توانا میاد توانا از روی منو قضاش رو انتخاب میکنه و میگه استیک. مایل کتاب فرهنگ لغتش رو از توجیبش در میار دنبال کلمه مناسب میگرده. زن منتظره صاحب کافه به طرف اونا میاده تواننا ناخودداگاه بلند میشه. پرسش این جوان این است که غذایتا خوب پخت شود یا عبدار بشه؟ بله بفرمایید. جولیت جولیت خمسه دونجوی ام ای زبان و ادبیات فرسی دانشگاه لیون فرانسه. خمسه؟ مثل شما مسافرم و سخبی این کافه خیلی خوش بختم کافه قشنگیه مرسی دلم میخوسم ترجمه هم زمانی سازمانی ملایم متحد شوم در نیویورک، ولی حالا با مرگ پدر کفتش در برود همراه پدر بزرگ و مادر بزرگم مهم نیست، میگویی شما این نیز باقزرد. بله باقزرد، منم دلیل میخوسم بعد چیوم خلاصم بشم. میتونم نام شما رو بدونم؟ نامم بله بله من اسمم رحمان توانا مهندس مهندس رحمان توانا <تصفيق> البته فدیت سرتون زیاد مهم نیست ولی اسمم رحمان نه رحمان بله بله رحمان عبدار یا خوب پخته بشه رحمان استیک بله عبدار عبدار عبدار شما به بازی سرنمشت اعتقاد داریم اگه اعتقاد نداریم بهترین قصر ادامه ندیم چون به نظر من شما مولانه خورجشم سدین محمد آفز شیرازی رو را میشین ازید ولی بله؟ شما مولانه خورجشم سدین محمد آفز شیرازی را میشین ازید اه... اون اول یکی گفتین خیر ولی حافظو میشنستم پرسش دوم. رند یعنی چی؟ رند رند یعنی رند خرمرد رند چندین تالا؟ خرمرد رند؟ یعنی مرد رند بزرگ؟ مثل خرموره یعنی موری بزرگ آباریکاللا لیکن نگفتید رند به چه ماناست؟ معنیش معلوم خواهرم یعنی مثلا پقه باس آره پقه باس یعنی وقتی مولانا خاجشم سدین محمد آفز شیرازی مفرماید جهدکان و سرحالغی رندونی جهان باش یعنی رئیس حگ بازان جهان باش حالا دقیقاً گه همچین چیزی نمیگه بعد شما خیلی سوالی سخت میکنیم بهشه تحصیلی من کارشناسی روابط بین ملله اگه درباره راهدازی اننجوری و تو حوزه های علوم انسانی و اجتماعی سوالی هست من در خدمت شما هستم صاحب کافه به طرف پیش خدمت بیر و غذا رو می گیرهیتی چرا اجکسگی گ نمیدوندرندینی چست؟ حالا میشه من یه سوال از شما بپرسم؟ بپرسید؟ اون کتاب چیه؟ دیدم حرفای منم تو اون نوشتی. جوابمو نداد. فقط به چشمام خیره شد و لبخند زد. پاسخ ندادم. تنها در چشمانش نگریستم با تبسم بر لبم. مرد مست چاقو که حالا دیگه خوابیده از روی صندلی بلند میکنه و به طرف در خروجی میبره و خارج میشن. اون یعنی رخمنی توانا مردی نیکو کاری بود به من کمک کرد بسیار بسیار و من یریش را از نمی برم جولیت برقا خاموش میکنه و با پیشخدمت از رستوران بیرون میرن شب جولیه در ساختمونه جولیت جولیت در ساختمونه باز میکنه و داخل میشه در آپارتمانو باز میکنه و داخل میشه پدر و مادربزرگ بزرگ اونجا نشستن و تلویزیون تماشا میکنن اول مدر بزرگ و بعد پدربزرگ بزرگ رو میبوسه و به طرف اتاقش میره همون شب اتاق جولیت اتاق نیمه روشنه جولیت تونیک و شلوار آبی گوشات پوشیده به طرف کنج اتاق میره زنجیر بلندی که انتحاش سلید داره از دو طرف دیوار آویزونه روی دو میز کوچیک مجسمه از حضرت مریم و مسیح قرار داره و شم بزرگی که روش عکس حضرت مسیح روشنه چند شم دیگه هم روشنه. جولیت تصبیش رو بر می داره. جولیت کنار تختش سانو زده آرنجش رو روی تخت گذاشته دستشو گره کرده و روی پیشونیش گذاشته از لای انگشتاش تصبیه آویزونه در حال دعاست. دعاش تموم میشه علامت صلیب میکشه صلیب و میبوسه تلفن زنگ می زنه گوشی رو بر می داره. هلو؟ باید پروفیسور اینجا باید براید و اینجا باید؟ روز از نمای بالا پل برقی ساختمان کنفرانس رو میبینید پل برقی روشنه اما جولیه تون تون پلها رو بالا میاد و سوار آسانسور شیشهی برجی که روبه خیابونه میشه پترابه خادم منشی که کنار پیش نشسته شهسته میشه. منشی اسم و فامیلش رو توی کامپیوتر میزنه. رحم نمایش میکنه. جولیت بوشی تاب به سمت اتاق کانفرنس میره. در باز میکنه داخل میشه. رحمان حساسی نیاز داره. سه مهندس دیگه به اتفاق فرباری دور که دور میز شاستن. رحمان فوراً جولیت رو میشناسه. دست من کاغذی رو برمیدارم و نیمی از صورتشو میپوشونه. آفره. اکسکیز ما ما رو ببخشید جولیت به طرف میز کنفرانس میره کلا فرانسویشو از سرش بر میداره هر نژاد به رفتارش دقیق میشه جولیت کدش رو در می هر اصی نجاد روش از اون بر میگرمه. رحمان زیر چشمی نگاش میکنه جولیت میشینه دستمال گردنش باز میکنه رحمان دوباره زیر چشمی نگاش میکنه Quelle langue voulez-vous que je traduise? Très bien, je suis prête. J'ai un mal de dents terrible soudainement. موشی sera mieux si مهمونا رو عوض میکنه. تنخواه در حال خوردن موزه و برای خودش آب می بریخته همه دست میزنند و فقط هرسین زاده که سروبات میپرسته. این زاده و رحمان و تنخواه و دو مهندس دیگه سرشون رو زیر میز میبرن. عجای کنفرانس که هفت نفران لبخند میزنن و به همدیگه نگاه میکنند. همه از میز میان بالا سوقاتی هستشونه. هر از نجات فرش کوچیک ایرانی رو باز میکنه و به همه نشون میده جولیت لای کتابش رو باز میکنه و میگه اخلاق تعلیف زید عبدالله شور شبرات شو خانم ترجمه هم آخر کتاب چاپ شده ممنون فرسیش بهتره بگم سرکار با این همه کمالات بد نیست دفعه بعد چادری چارغدی روسری چیزی سر کنیم چرا آقا؟ از بابت حسن همجواری عرض می کنم آجا بریم بچه های سفارت نار منتظر یخ می کنه به هر حال حسن همجواری آداب خودش داره آج کنم نفهمیدم چه شد که یک بره دلم برایش سخت و نگرانش شدم پرسیدم دندانیتم بسیار درکناک است بله بله بله در ناکست نکند از استکید شب ن... ن... ن... کش بیشتر ان را میپختم خودی تم فرمودید عبدار عبدار اه. بله آبدار منظورشون به من آجا عجیب در چشمانم نگریست گویی میخست چیزی بگوید یا کاری کند ولی نتوانست میخواستم گردنشو بشکنم دختتر دراز ننگذاشتداشت صاف زد تو برجکم. باید یه وقتی یه جوری زخرم روش میریختم اما کی و چه جوری خودم هم نمیکنن باند فرودگاه بیرود هواپیما میشینه درست نه ماه و نه روز گذشت تا دوباره این فرصت رو به دست گل گلا بانزور حارت ویدوش بیرون سالن فرودگاه بیروت. هررس این نژاد و رحمان و بقیه با ساکاشون به طرف ژان میاد خوشوبش میکنن و میرن روز داخل ون جان رانندگی میکنه و هرسی نژاد و رحمان و تنخواه و دو مهندس دیگه تو ون نشستن از خیابونه شهر بیروت میکسرن تنخواه با انگشتش زرب میگیره و با ژان همراهی میکنه هرسی نژاد یه طوری نگوش میکنه که یعنی خودتو جمکان بسته تنخواه متوجه میشه و سرشو پایین میندازه رحمان به جان نگاه میکنه و لبخند به لب داره هتل رحمان ایستاده و منتظره هر از کلید کارتو نشون میده توانا ولی یعنی باز با همی؟ رحمان آهی میکشه و در هم میشه شب اتاق هتل. هر نژاد خورناس میکشه رحمان به ما دراز کشیده و تو فکره. روشو رو بر میگردونه و هرسی نژاد رو نگاه میکنه. میخواد یواشکی بلندشه شکی بلند که میبینه هرسی نژاد نشسته و بهش چشپوره میره. یعنی کجا؟ مجبور میشه دوباره دراز بکشه. روز اتاق کنفرانس. رحمان هرسی نژاد سه مهندس دیگه و جولیت و بقیه اعضای کنفرانس نشستند. هر از این پرتغال پوس میکنه و سر حاله تنخواه در حاله خوردن سیب و با حیرت و تحصیل به جولیت نگاه کنه جولیت رو مشکی سرش و مدل لبنانی بست و سنجاق نگیندار قشنگ به زده و داره مثلوی رو میخونه از سال خیزار که اولین انجومانی زنان در حوزه علوم انسان و اجتماعی در جنوی باشقا میگم این حرفای آقای مدلش همون حرفای دفع قبل نیست؟ عارفه ولی نفس حقو بچسبه نفس حق اللهم ما کیلو چنده نفس حق لاز. هاش هراسی رو می‌گرفت متوجه نمی‌شم کجا این خط نصیحتش کرده دختره از اینو دور شد جون من به یه روسری فرسقلیش این چه بخشه بندیلی خودش را از نفس حقه هاش هرسی هرسی در جنوب لبکنند په به عدد خیزار و خشتاد و دو نفر رسیدند است. نجان بیم چقدر بهش میاد هرسی نجان از رو و همه شما تبریک میگویم فقط هرسی نجان سنبات میفرسته دوباره زیر میز میرن و رو بیرون میارن و تارف میکنن هر از اینه قبل یه فرش بلو... کچه باز میکنه و نشون میده. جولیت بلند میگه. میگی؟ آقایی مدلش میکنند امروز را مهمون دیدانهای های بیروت بشید. موافقی؟ بله بله حتما. نمیدونم چرا ولی نمیتونستم چشم ازش بردارم. چرا اینقدر عجیب به من منگریست؟ چرا؟ روز دریای بیروت داخل قایق تفریحی، رحمان، هرسی نژاد، ژولیت و سه مهندس دیگه داخل قایق نشستن. رحمان و ژولیت چشم از هم بر و نگاه های معنیداری به هم میکنن. رحمان چشم میدوزه به انتهای قایق که با فشار آب و کنار میزن و حرکت میکنه. قایق کم کم به شهر نزدیک میشه. روز رستوران ساحلی دور میز حرسی نژاد رحمان، جان، جولیت و سه مهندس دیگه نشستن نهار خوردن رحمان ایستدو فیلم برداری میکنه هرسینژاد نجاد جولی دهنشو با دست گرفته و با یه دست دیگه دندوناشو با خلال دندون تمیز میکنه جولیت خانمانه و محجبه نشسته حرسی نژاد از رفتار سبکسرانی ژان بدش میاد و سرشو تکون میده حس پ داغ و غی بی تازون اخ قیامتی هم تویقاه خدا بغدسی داغت مغ می داغه یه غدم محزغه عدل الهی بهت ثابت میشه که روسی یای بس که تو بخشم توقا بس که تو ازاقدی مقاه بردم کرا خانمه جولیت شما چی؟ من چی؟ چیزی بلد نیستید بخونید تصنیفی، ترانهی، آوازی باتن خواه بله باشالله چه افتری چطور جما؟ ببالله نحی از منکر که نمی کنی هیچ عمره به منکرم می کنی استغفال الله اگر اجازه بفرمایید من غزل از آفز برایتان تنگ کنم قراعات حیبی نداره چه چه نداری یه وقت جولیت بلند میشه حافظو باز میکنه رحمان فیلم برداری میکنه رحمان روی صورت جولیت زوم میکنه گفتم گمه تو دارم گفتا گمت سراید گفتم که ماه من شو گفتا اگر براید گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم گفتا که شبرو است او از راهی دگر آید گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفته اگر بدانی همعوت رهبر آید گفتم که نوش لعلت مارا به آریزو کشت تهران شب اتاق رحمان رحمان داخل مارم. کامپیوتر مارم. فیلم جولیت رو میکنه گمراه. روی صورت جولیت نگه می داره بهش خیره میشه درش برای جولیت تنگ شده و گریهش گرفته آهی میکشه به تصویر جولیت دست میکشه دستشو بر می داره با موز عکس خودش رو که کنار خمس خمسه با وحشت ایستاده میاره و نگه می به عکس دست میکشه اشکش سرازیر میشه دست وش رو روی پیشونی گره میکنه و های های گریه میکنه حال روشن میشه و آبجی بزرگ میمنت درو باز میکنه. ای رحمه؟ چی شده؟ چی شده؟ ای چیه؟ هیچی مامان میگه شام حاضر بی پایین. شام چیه؟ خورشت کدو با تبوله عمه پخته. چی هست؟ یه جو سالاد لبنانی هست. لبنانی. نه نمیخوام. بری کنارم بزن. رحمان دوباره دستش رو گره میکنه و روی پیشونی میزه رو گریه میکنه چشتش من میریم پایه میرنه درمی دنده از پشت در میاد چیشون بابا میگه اشتها ندارم که چی که یعنی چی اشتها ندارم؟ نوبره بالا ایتاش گریه بید. خدا مرگم بده چرا بچه ها؟ بکس تو جفهش نکام که انتر زار میزن امه به قلبنش بده خویشا عملیاتش افتاده. بعضی اینجوری میشه رحمان. این اداره. رحمان با شتاب از در آسانسور میاد بیرون. در شیشه ای اداره رو باز میکنه سلام توانا. سلامو اتاق شیشه‌ای هستن. در اتاق خودش رو باز میکنه می از توی کشو یه سری پرمننده رو برمیده و داخل کیفش میذاره میخواد در کیو بمنده که آرسین نشاد میاد و میگه رسیدم بخیر. میگفتی افتی قاوی گوسفندی چی سی؟ کجا ان شاء فکر کردم برای پاره‌ای از مذاکرات به بیروت سفر کنم. پاره‌ای؟ بله، پاری. فکر کردم برای اینکه بوجیه به احتمال حرام نشه، من زودتر برم مقدمات کار بچینم تا شما بیا احسن. احسن. فکر خوبیه. اندام در جوار ژانویه هستن. ژان روز بیروت هواپیما میشینه. بیرون سالن فرودگاه ژان میگه: چاکرو داش احمدو حجقاق زنگو بزن به افتخارشو. گوش کن جان، ما خیلی وقت نداریم. باید برای کاری از مذاکرات بریم سر میز مذاکره. حجقاق شماقا من؟ طلا قچشم. اتاق کنفرانس رحمان هرسی نژاد و بقیه اعضا دور میز نشستن ژولیت نیست رحمان با عصبانیت در خودکارشو میزاره و اونو پرت میکنه و روی صندلی جابجا میشه دی دی پور... از سال 1993 که اولین زنان در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در جنوب لبنان تشکیل شد هموارد دوستان م راهانددازی کلاس های علوم انسانی دوستان بله، من حفظ شدم روز شهر بیروت رحمان پای پیاده روی بزرگی از روی پل میگ و به طرف خیابون میره و تاکسی میگه. جلله رستوران ژولیت. رستوران تعطیله. رحمان پشت در مونده. در میزنه. هیچکس نیست. رحمان چند قدمی از رستوران فاصله میگیره. میسته. میره تو فکر. شب. تاکسی مییسته. رحمان پیاده میشه. همون شب. رحمان به طرف رستوران میره. رستوران بسته است؟ چ تاریکه. رمان داخلو نگاه میکنه. خبری نیست. دستگیره درو تکون میده. باز خبری نیست. چند قدم از رستوران فاصله میگیره و میسته و میره تو فکر. یه شعر هست نمیدونم مال حافظه سعدی مولویه که از نسیم سحر میفرسه منزل یاره یا خانه دوست کجاست. حالا زبون حال منه. اتاق هتل. ای... خداون می فرماید یا ایوه اللذین آمنون اینکه دیگه منشو می خب خوب خدارشون ازا نودی اله سرات من یوم الجمعه او اله به ذکر الله یعنی هنگامی که نماز جمعه اعلام می شود بچه داوید به سوی خدا چی شد؟ بله پاشون پاشو آمن اینکه امروز جمعه است و نماز جمعه با خود باش می همشمیشو بخونید. بله، نمای بیرونی مسجد. و حالا داخل مسجد. از نمای بالا زنان با چادرهای یکدست سفید این طرف چادر و مردان با لباسهای معمولی اون طرف چادر به نماز ایستادند. حرسین شاد و رحمان کنار هم هستند. نماز تموم میشه. رحمان الله اکبر میگه و سرشو به راست و چپ میگردونه که یهو از لای پرده سفید جولیتو میبینه دوباره نگاه میکنه جولیت کتاب به دست بلند میشه و میره رحمان بلند میشه هر از سینشات نیست و در حال دعاست رحمان میره بیرون مسجد رحمان از کنار زنو رد میشه و به دنبال جولیت میگرده زن و گپ میزنن و رد میشن رحمان از یه درگاهی میخواد بره تو که دوتا زن به زبون خودشون بهش میگن که اونجا چی کار میکنه و رحمان هاجواج علمه اشاره میکنه که دنبال کسی میگرده و میخواد بره اما زنان نمیذارن و بهش میگن که از طرف دیگه بره رحمان میره به صورت تک تک زنات دقت میکنه ولی از جولیت خبر نیست لحظه میسته دوباره حرکت میکنه ولی هیچ خبری از جولیت نیست کنار دیوار رو به حیات مسجد میسته و تک تک زنها رو نگاه میکنه معیوس میشه آب دهنشو رو میده روی سک میشینه و آه میکشه تو فکر میره که یهو جولیت با کتاب میزنه روشونه چپشو میگه رحمت سلام رحمت سلام جولیت آمینه نام من آمینه است آمینه آمینه با سر تحیید میکنه و رحمان با تعجب و علاقه نگاش میکنه روز بیروت رحمان آمینه داخل سفارت جمهوری اسلامی ایران میشن داخل اتاق آقید عقدشون کرده و داره از هر دوشون امضا میگیره آمینه منطقی بلند مشکی گشاد و روسری سبز قشنگی سرشه هر دو خوشحالند تهران خانه رحمان مادر نشسته گوشی تلفن دستشه میمرد کوکب خانه و امه دورش کردن مادر بخت زده است انکار شنیده که رحمان امنه عهد کردن یهو از حال میره رومز تهران جلوی در حیات میمنات و کوکه پلکارت خوش رحمان و بلی در حیات میزنه. آره یه شعری هست میگه یار در کوزه و ما گرد و جهان میگردد. زبان حال من. یار در خونه ما گرده جهان میگردیم. خانه. یک خانی تازه و آدمهای تازه. چه پیش خواهد اومد؟ سالان پذیرایی خانه رحمان. مراسم عقد و عروسی رحمان و آمنه مهمونو دور تا دور روی صندلی نشستن رحمان و آمنه کنار سفره عقد نشستن ناکت. به حق چیزای ندیده و نشنیده چه معنی که در روز کل بکشه چی کارش نه خب جانبه براش بکشتن داداش بکشتن چی جلافت ها خطبه رو جاری کنید آج آقا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین قال رسول الله صلى الله عليه و وسلم و سلم و سنتی با میمنت و شادی پیوند این زوج خوشبخت یعنی آقای رحمان توانا و دوشیزه آمنه خمسه را به فال نیک گرفته که انشالله زندگی خوش و سبزی را شروع بنماین خب هاش اون مقدار مهریه چقدر مشخص شده؟ چی بگم ها با مادر مدر مهریه چند تا که توافق کردیم والا مادر ما روی چی توافق نکردیم یعنی اصلا حرفش پیشنه من جولیه آمینه مهریه رو چند ببندیم که هم خدا رازی باشم خلق خدا آب جانم آب میخواد؟ آب مهریم آبه وا. این چی میگه مادر؟ آخه آب هم شد مهریه بپر چند تانکر خاجه آقا کبین من تک آب است فقط یک کلمه بنویسید آب. بسیار خوب پس عروس خانم آیا بنده وکیل هستم تا شما را به عقد دائمی آقای رحمان توانا به صداق و مهریه یک جلب کلام الله مجید ربانی یک جام آینه و یک زو شمدان و مهریه مشخص شده در بیاورم عروس خانم وکیلم عروس رفته گل بچینه کجا رفتم گل بچینه ما که انجا هستم خوشی آقا آری آری آری آری همون معدبانه بله دیگه آجه بسیار خوب پس مبارک باشه مادر زیرا لب بر بر از مهلیدن خدافزی میکنه خیلی مهمون احمد که حوله خوب هم چه جواهری نصیبم میشود حولی بیشود هم دیگه جواهر که سال دیگه تیله هم نصیبه چه از گوشه سبد گل شاخه گل روز سرخی رو برمی‌داره و یکی یکی پرپر میکنه و میگه دوستم دارند دوستم ندارند دوستم دارند دوستم ندارند دوستم ندارند, دوستم ندارند. دوستم ندارند. آری انتل خست خدا وندا این خیلی تلخ است نمای بیرونی خانه رحمان وقت از آن صبح، اتاق عروس و داماد. رحمان روی تخت خوابیده و سرشو کشیده. امانه بالا سرش 62 اونو بیدار میکنه. رحمان. پاشو رحمان. نمازت گزا میشود. رحمان. شب زفاف کم از صبح پادشاهی نیست چون مادرت بز به خواب. نمازت گزا میشود. صبح پادشه می شود صبح شیطانی شیطون کدوم دلت خوشه؟ دلم خوشه است؟ خیر دلم بسیار بسیار نخوشه است آمینه از توی لیبان قطعی آب به صورت اه. را خوالی پاشه چرا اینجوری می کنیم اگه دیوانه شدی؟ دیوانه؟ نه بخشنده گتری از مهریم را به تو میبخشم. وای بر تو وای بر من؟ وای بر تو که نمی من بخوابم وای بر نماز گزارانی که از نماز خود گفلند مع اون شخار مع اون شخار دیگه چیه یعنی سوریه مع اون ای شبحال دوباره میخوابه و آمله پتو رو از روش میکشه بابا پتو دیگه بابا من میام دیگه خانی رحمان نماز صبح ازای خانواده به نمازیش دادن اما رحمان بیستاد خابه الله اکبر پشت رحمان مادر عمه خاله میمنه تو کوکم وام آخابام آمین است. یا که و یا کانستعی، اهتن سراطق و امروز مطلب مهم دستگیرم شد. مردان این مخله بسیار بسیار عجیبند. و بسیار بسیار شبیه رحمان روز مغازه میوه فروشی فروشنده بسیار شبیه رحمانه خابالو خمار به نظر میرسه آمنی با چدور مشکی قصد خرید داره سه توم. من از شما سه کیلو پرتغال خواستم آقا خب هم سه کیلوه دیگه نه خیر این سه کیلو من های صد و پنج گرم است خب حالا منزور منظور روشن است. من سه کیلو میخواهم نه سه های 150 و پنج و گرم همینی که هست میخوای بخوا نمیخوای نخوا شما میخی سخن میکنید و من فرسی وای برکن فروشن اصلا میدونی چیه؟ فروشندیه نیوه ها رو کناری میذاره ما پرتغال نداریم ولی شما که پرتغال دارید اینه ماله مشتریه شما مشتری نیستی واگه من فکر میکردم اصلا ده نیستی نیستی آبجی ممنون که آگه هم کردید آرهبا میبخشید این ابج که گفتید باید مخففه کلمی ترکی اقب باجه باشد که به مرور زمان تبدیل به آبجو شده. دروست است من چه میدونم؟ بابا دستش دا کچل آوردار فروشندگان این مخله بسیار بسیار عجیبند در خلی بسیار بسیار مدرند خود را کچل خطاب میکنند سوپرمارکت صاحب مغازه کلوبافدنی اینک تهستکانی دو رو میان سال به نظر میرسه اونم خیلی شبیه رحمانه چی تموم شده؟ تاریخ مصرف انخامه چکار میکنی خانم؟ یک پرتاب سه امتیازی پدر بیا مرس هفت تومان قیمتش سه امتیاز هم چی همشین میکنی؟ بابا بی این صفش می میداد اینجا ای ننداز با تو هم این فقط دو روز تاریخ مصرفش بخورید. چی؟ خودتان بخورید. اگر مطمئن استید که سالم است معلومه که مطمئنم بیا نه پر شده نه وارفته نه گوله کرده بابا ایو ناس خامه دو روز تاریخ گذشته آدم میکشه نمیکشه که خاطرم سر اینقدر حرف زور میزنی نمای بیرونی سوپرمارکت ماشین آمبولانس کنار سوپرمارکت میایسته دو مرد از اون پیاده میشن و یکی در عقب آمبولانسو باز میکنه و دیگری داخل مغازه میشه خدا میدونه برای صاحب مغازه چه اتفاقی افتاده فروشندگان این مخله بسیار بسیار عجیبند برای اثبت مرغوبیت کالا تپای مرگ پیش میروند مغازه قصابی صاحب مغازه جوون و سیبیل کلوفتی داره اونم خیلی شبیه رحمانه صاحب مغازه یه مش پولو میکوبه روی خون. این خون باقی پولتونه این پول است از از خب پول دیگه خیر آقای گاستا این پول نیست آمنه است تو دو هزار تومانی نو صاف و بیرون میاره این پول است ببین مادام اون پوله اینم پوله حالا گیرم یه هوا کنه تا چه توفیری میکنه شما چرا به پولتان احترام نمیگذارید مثلا واسه چیکا کنه گدر بدنید احترام بگذارید روی روی... تخمه چش؟ آری اره روی تخمه چشمتان بگذاریم ببینم آدم من وصله ندارم این باقی پولته نمیخوای این اصلش شما رو به خیرماره به سلامت وصله روز حیات خانی رحمان آمنی داخل حیات میشه و کنار بخچه و گلدونه شمدونی میگذاره در حیات باز میمونه زنی از در حیات وارد میشه دو بسته سبزی گرفته و از کنار آمنه میگذره تو حیات برو بیایه. دیگاه آش رشته، شل زرد، حلوه، عدس پلو رو آتیشه کوکب با جبه های رشته به آمنه نزدیک میشه امی خانوم با یه زنی دیگه روی تخت نشستن و کلی سبزی پاک میکنن کوکب یه شیشه گلابو و توی شوله زرد خالی میکنه خوش جا بودیت خرید من از خریدت به جویش گفتگو کردم وا. گفتگو با کی چی کردی با فروشندگانی که بسیار بسیار شبیه رحمان بودن تو تمام دنیا فقط یه نفر شبیه رحمان بود اونم بابای خدا بیا مرزش ای داداش حاج خانم برگون در به خانم صدیقی بگو امروز سر سفره یه روزه هز از زینب هم بخونه قرآن خدا غلط میشه شما هم یه چیزی جا کنی. هرگز هرگز چی؟ قرآن خدا هرگز غلط نمی شود چه چی چیز را باید جابجا به جا بزرگ برنج رو میده دست آمنه و میگه. گه تو فیلن اینا رو پاکم بردری ثابت چه تا بعد آمنه در حالی که به برنج نگاه میکنه میگه؟ اینجا برادری خرف اول را میزند زند خط هم باید اول برادریشان را ثابت کنند خانه رحمان سفره عبالفز پهنه شل زرد، خورمان، نونسنگک، آش آشرشته، گلاب سبزی خوردن، شیرینی، شم، میوه و قرآن روی سفره قرار داره و لوبلای سفره رو با گلای قرمز کوچیک تزین کردن آمنه، ناراحت نشسته قی بتونشون گوش میده از دقش می من جون همچین کهدید اسم باواسم عممرره در اومده رفت تو سووریه ازدوش اونم چیز زمینی او با این اصلا خانواتا ننه با گدان فکر میکنین کهجلیه نش مال چیه؟ از پس که بشه رنگیمون 5نج میلیون داده پرتومش رو کرده دما اون وقت دروغکی میگه که پلی پاچکی بوده دروغ خونااق نمیاره آبچیش هم لگی خودش لباساش به اونجایه تاناکراشکن اون وقتی جرو کانال فسیون برش زدن آارون کانال فسیون آدم هم که باهاشون ده به دهم میذارید قربتی ها ندیدی چجوری میرن امام داوود یه زیلو هم کردن کف کامیون دوموادشون هلک گوهلک اینو این کالش بود میدن دخترشون دانشگاه آزاد قبول شده هر سه چهار ماه سه میلون پیش شد آمینه کتابی را که تو بیروت تو کنفرانس بهش دادن بر بیداره و لای اینو باز میکنه پایران گوش کنید در عجبه و این همه خوراک بسیار خوشمزه که بر سر سفره است چرا گوشت مردی برادری خود را میخورید؟ بیمیرم، به این فرسیش این میگه این دختره؟ عروس شکرز برادری خدا به درچ فتمه ای خانم توانو، چی میگه این عروسه؟ ما گوشت برادر مردمونو میخوریم چکی؟ لافتا؟ واختی بودی دختر جواب بده این چه گستاخی بود که به خانوما کردی؟ از یک دیگر غیبت نکنید آیا دوست دارید که گوشت مردی برادری خود را بخورید البته از آن دارید راحت درید معلوم هست چی داری میگی دختری چش سفید ناموس حل چرا عصبانی میشی خانم فروخی حرف بعدین از ازنده دارم یه آیه از قرآن خوند آدرسشم هم داد من سرو رو آیره یه که حدیث القیبت و عشد دومن زنا رو میخوند و پرمنده منو زیر بغلمون میرفتیم دیگه آمنه وقتی روایتو رو میخونه یکی یکی بلند شنو اتاقو ترک میکنه به جز کوکب همه میخوان مانع رفتن مهمون ها بشن اما نمیتونه کوکب کنار آمنه میشینه که حالا دیگه تنها کنار سفره نشسته آمنه لبخند زنان شول زردشو میخوره اما نراحت به نظر برسی بسم الله نشه شب اتاق رحمان و آملی رحمان روی تخت نشست و آملی کتاب بدست کنار پنجره است آخه چه کاری بود کردی زن؟ از ملکر به تو تازه مسلمون نیمده پیزنه که شخص سال کارش عبادتا نهیز کنی. از کنیم کنی. سر از سفره همه قرآن خوندند من نیست خواندم آخه قرآن برم تا قرآن نخوندی نیستدی به قلب اهل مجلس آیه هفته می خودمون می چی می فرماید بهتر از شما می دانیم چی می فرماید چه هر ساله که میدونیم چی می خانم جولیت آمنه. چیه بهت برخورد گفتم جولیت کرم ابریشم از پیله که برو میاد دیگر رومش کرد نیست پرفونه است رخمن در ایوون بازه آمنه به سمت ایوون میره طبقه پایین به پاس طبقه پایین مادر کلی بازی دار و هران هر داره دوباره قش کنه. دو خودم دیگه آب برامون نمونده. ای، چی کردم. دو شب بیایی، دو شب بیایی، دو شب بیایی، دو خیلی که آورده توی خونه آه علیسه هاجماشالا بی هجابی تن داناش تو گر لرزون دی با با اتاق رحمان و آمنه اینو نگاه رکابی پوشیده با شلوار کتاب ای وای حالا نمیشه شلوارک اگه با رکابی بابا لبسته تیم بسکتبال دانش کردست آخه بسکتبال هم ورزشه خب میرفتی شمشیر بازی به بود خب لبست رکوشیده دیگه مالا حیات خانی رحمان رحمان و آمنه روی تخت نشستن و منقل نسبتاً بزرگی روی زمین روشنه آمنه دونه دونه اکسوش رو داخل منقل میدازه رحمان لیوان چای نصفش رو داخل سینی میزه رو بلند میشه دلم برای شند تنگ میشود بسیار بچه مسلمون دارش برای روزگار جاهلی تای نمیشه نه گرخمن در روزگار جاهلی هم لحظه های زپایی داشتم اینجا بود که نخواستین بر تو را دیدم اینجا بود که بر تو عاشق شدم اینجا بود که ایمان آوردم محمد در جاهلیت برگزیده شد خدیجه در جاهلیت عاشق شد و علی در جاهلیت زده شد مزوک باشه فرد صبح میزنم مزوک رحمان در حال مزوک زدن به آمنه گوش میده آمنه از روی کتاب مطلبی رو براش میخونه هنگامی که شب برای عبادت برخواستی زیرا زیر ایب فرود میآید و در هنگام عبادت دهانش را دهان تو می پس چه بهتر که نفس و گفترد خوشبو باشد آمنه کتاب رو میبنده، روشو بر می و با قهر میره اینجوری نمیشد، نمیتونستم بذارم تو خونه بمونه میترسیدم با این کتابش باز قشقره اقراب اندازه پس همون شب تصیمم روز داخل ماشین رحمان آمنه در حال صحبت هستن و به سمت اداره رحمان میرن مترجم، انترپریتر اداره شما مترجم نداره؟ چرا دارد خانم آئری مسلط به سه زبان فرانسه انگلیسی عربی منطقی در روزه برای دامن تحصیل رفته کاش زودتر میگفتی مداره که تحصیل خود را میعوردم همهش اینجاست دست کم گرفتی آز جمعان خانمی ادم ارگز ایش گشت را دست کم نمیگیرد رحمان زبط روشن میکنه آمنه از آهنگ بعدش مید این چیز که تو گوش میکنی رحمان این چیزه ب... بچه ها گذاشتن مگر شما بچه داری؟ من؟ نه ب... منظورم بچه های اداره هست یا وقت ماشین قرض می‌گیرن اینه که بفرما اینم از این رحمان سیدی رو در میارو میذاره بالای سایبون ماشین آمنه هستو که فش سیدی رو در میارو میگه این را باگذر لطفا به بح, بح شاکر استادم هستیم اداره رحمان ساعت اداره نه و چهل دقیقه است. مدیر که همون آقای حرسی نجاده داخل اتاق داره آمنه رو گزینش میکنه خانمی کنار میز نشسته و میکنه از آقای حرسی نجاد خواهش کردن این از گزینش طرف نظر کنه اما گوش نکن رحمان به ساعت نگاه میکنه ساعت ده و دقیقه شده در اتاق مدیر باز میشه هرسی که انگار سائقه زدتش یه وری رامی رو مثل مار به خودش میپیچه از اتاق میاد بیرون داره میوفته که رحمان میگیرتش تنخاق آبدارچی و یه آقای دیگه میان کمک و هرسی و با خودشون میبرن چه چی باید چی دختر؟ چه بلایی سرین پیرمرد وردي؟ من ایچ نکردم. ایشم پرسید من پاسخ دادم. آشنگا طول کشی؟ گفتن نماز بخون. من هم نماز خوندم. چه نمازی خوندی؟ سلط جعفر. چی؟ شما گویید نماز جعفر تیاری. یا امام حسین. اداره رحمان آمینه با دور پشت میزش نشسته و با تلفن در حال صحبته. با مشغول شدن جولیت تو اداره موقتا آرامش به خونه بازگشت اما کی بود که ندونه این آرامش آرامش قبل از طوفانه شب نمای بیرونی خانی رحمان چرا ها روشنه آمینه شمی رو روشن میکنه رحمان مادر خاله امه میمنت و کوکب دور میز نهار خالی نشستن و آمنه از آشپزخانه دونه دونه غذاها رو میار روی میز میزه رو معرفی میکنه سالاد لبنانی مادر که انگار رعشی گرفتده دیش با حرص سرابات میبرسته خموص تببوله آه... آه... آه... آه... فتایر مگدوز بجوز کوکب همه یه چوری به غزه ها نگاه میکنن کنن که انگار خوششون نیومده کفتا متبل، فتوش چنجه مادر جان خاله جان عمه جان میمنت جان کوکاب جان ممنون از اینکه اجازه دادید شم امشب را من بپزم نوش جان به بچه کرده زنداداش مادر به کوکب چشپره میره <تصفيق> رحمان ظرف غذا رو میگیره و برای خودش غذا میکشه شغانه میکشین از من سیرم مادر. سر غروب یه چیزی خوردن مادر پامیشون میره منم یه لغمه پنیر بسمه صفر قلمکار واسی چیمه من که از اینجور جلافت ها خوش هم نمیاد اما میخوانه هم میرن آشخان هم هرچی قصد سباکتر بخورن شب راحت میخوام منم یه یک از نهار مونده همونو میخورم. واقع غذای زور مونده چرا من که آشخه غذای لبنانی همون که دست زن و داشت باشه کوکب پاشو بریم تاشباز خونه کارت دارم پاشو کوکب میمنت هم میرن علی مونده حوزش ایب نداره خودم هم عش می خورم هنوز گهند؟ نمیدونم نگرانم رحمان. نگران نباش درست میشه برای خودم نیستم. برای اون هست که نگرانه امنه به ساعت موچیش نگاه میکنه دیر می وقت وقتی زیادی ندارند رخمن چی دیر می شود؟ درست در طر میزن آه می و میره مادر انبه خاله کوکب و میمنت سر گاز به غذاها حمله کردن و دورن میخورند. آمینه میاد ببخشید شم پختم و شما گهر بودید شم آوردم و شما گهر بودید به سر میز آمدید و شم نخوردید چون گهر بودید بلکم دختر دنبال شهر میگردی؟ من از رفتار شما نرخت نیستم اما اگر تسته دیگر با من آشتی نکنید دیگر مسلمان نیستید چی؟ من؟ من نمو سلمونم؟ <سؤال�> من نمو سلمونم؟ من چیزی نیست؟ بیرینی؟ چه میگونه؟ این خوم ظالمین با جلام بتاشت؟ کشت؟ مادرت کشتی زن؟ یاب غمدش که درش خوب میشه چیزیش نیست؟ من چیزی نیست؟ باید جلام پر پر بذارم تا باور کنی باگر <تصفيق> چی بگیم مادر جو نقدر خودی قشت گردین دستتون خونده میگه آخه چشنی تا قد میاریم تازه مسلمانی به مامان بگه نامسلمان چی <تصفيق> جلا فتا تو به توبه توبه <ممم> <تصفيق> فقط دو دقیقه فرصت دارید رمانی زن چی میگه از من چرا میپرسی از خودش بپرس از من هم بپرسید این کتاب به شما پسخ بگوید هرگر دو مسلمان با هم گهر کنند و سه روز در این خلت بمانند و آشتی نکنند از دین اسلام خارج شدند. آی حدیث نووی ها مامان لازم نکرده تو چیزی بگی. خودم عربیش از حفظ حالا چی میگی تو؟ میگویم شما پنج شب شب با من گهر کردید و امشب یک شب است شب است. و یک ساعت و و 59 دقیقه گذشته. و شما فقط یک دقیقه دا فرصت دارید به من آشتی کنید وگرنه از دین خارج شدید. همچنین میفرماید هرکس در آشتی کردن بردیگری سبگت گیرد برای ورود به بهشت نیز از او سبگت میگیرد. فهمیدید پس چرا معتنی سبگت بگینیدیگه همه حملی می طرف عاملی تو بهاش آشتی کنن باید خوشحال می ولی نمی چرا نبودم یه جای کارگیر داشت من اونجا روز اداره رحمان رحمان پشت به ما در اتاق مدیر رو میبنده و وارد میشه هر نژاد پشت میزش نشست و داره روزنامه میخونه تو خجالت نمیکشی؟ از چه بابت آجا تو میدونی نبیره چه آدم گندهی هستی؟ یعنی پدر پدر بزرگت کی بوده؟ نه آجا دقیقا نمیدونم اسم محلتون چیه؟ ما الان اسم شهید داره بگه قبلن بهش میگفتن سلیم آباد این سلیم که میگی پدر بزرگ پدر بزرگت بله یه درونی داشت با سیچل تا زن سیغهی و عقدی به معنی واقعی کلمه سلیم آباد و کبلایی سلیم آباد کرد خبال اینکه پدر بزرگ پدر به براندازدار تعداد زوجین خیلی خوش اشتهاه بوده اشتهاه اشتهاه کدومه طرف یک روز رو تو خونش فرمون میداده جیک از یه ضعیفه در می اون وقت تو رحمان تبانا نبیره کبلای سلیم صابمنص چطور نمیتونه از پس یکیش بر بیاد منظورتو نمیفهمم آقا بیا که اولاقی؟ طرف یک کتاب گرفته دستش داره دودمان تو به باد میده خبرشو دارن تو خونهم حاج ما دل خوشی ازش ندارن البته این دعوای قدیمی عروس و مادر شوهر و شوهر. نگو بچه دعوای قدیمی کدومه زنت با یه کتاب اخلاق اونم کتابی که خودمون بهش دادیم واسه هممون شاخ شده و رجاز شمزی پعلوانی میخونه اون تو یه بچه مسلمون شستاد باشه و میسی تا طرف چپ و آبرکات عمره به معروفون عیز مونشد بکو به تو بوزد بابا دست بریزا رحمان بودزده مونده چیه؟ چرا مثل با شدی؟ زنت ترون شده آجی. کار وامش نکنی نمیتونی رو گردش زین بذاری و سوار بشی. رحمان تو فکر فرو میره. من چیکار باید بکنم؟ ها تازه اومدیم سر اصل مطلب. خب گوشاتم این چی دارم میگم. به این ترتیب دعوای تاریخی عروس و مادر شوهر به همت آقای حرسین نجات به یک جنگ صلیبی تمام ایار تبدیل شد. به مدیریت بحران این نبرد رو شخصه ایشون شب نمای بیرونی خانه رحمان چراخا یکی پس از دیگری روشن میشه داخل خونه به جز رحمان همه در حال نماز خوندن هستن حالا به جای رحمان به من, من میگی رحمان مهم نیست ولی دیگه به خدا که نمیتونه بگی بسم الله الرحمن رقیم فکر کنم کل هم نمازهایی که تا اینجا خوندی باطله درست میگم آج خانم ما بله بله باطله باطل. چیو بله؟ پس اینکه مولانا میگه ما برون را ننگریم و را خاصه چی جلافتا؟ آج خانو میگم باطله یعنی باطله تا چیم؟ آمنه قمکین میشه روز اداره رحمان اتاق مدیر هرسی نژاد به رحمان میگه برای شوید آفرکات خوی بود بریم واسه رانده با. خانه. آمنه روی تخته سیر خورد میکنه و رحمان چای میخوره صفحه بیستنان کتاب اخلاق که دادم. خب نوشته پیغمبر سیر نمیخورد آمنه دست از کار خودتن. میکشو رحمان میره کوکب میاد و میگه ادامه بده زندازا شید جای قرآن ننوشته سیر هرون ادامه میخواد بره که رحمان مچشو میگور با قیز نگاش میکنه کوکب میره اداره رحمان اتاق مدیر هر به رحمان میگه اینم بد نبود داره تلا تلا میخوره تا هوش نیمده ماشته بعدی رو بزن روز خانه رحمان امه و خاله و میمنت نشستن و سبزی پاک میکنن مادر کنار میز تلفن نشسته و با سروات شمار زیر لب سروات میفرسته رحمان کنار شیست داده آمنه میخواد بره دستشویی که ای ای ای ای داناش دیدی چی کار کرد؟ بله متاسفانه دیدم چه جلافت ها؟ خجالت خوب چیزیه؟ تازه اسم خودش هم گذاشته مسلمون من چه کاری بده انجام دادم؟ با پای راست رفتی مسترا تازه میگه چه کاری بده انجام دادم؟ من که پاک امید شدم اینجا نوشته مستحبه با پای چپ بری یعنی چه؟ یعنی خلافش حروم نیست کوچر اداره رحمان اتاق مدیر تسبیح به دست به رحمان میگه اطلاعات میخوان وضو درست میگیره تیمم بلد است مهاجره داره نماز عیدین میره نماز آیات میخونه آداب دعا میدونه انفاق میکنه روزه میگیره چه روزی دوشنبه و چهارشنبه ببخشید پنج یعنی فردا روز خوبیه برای خونه حیات خانی رحمان میمنه تو خاله فرش کچکی رو گرفتن و مادر و هم میدونن با چوب فرش میزنن تا خاکش تنیز بشه رحمون اونجا ازداده همین ماسی گذاشتن آمله در باز میکنه اون میاد آمله با دستش دور دهنش رو میگیره عجیبه که نمیدونه فرستادن و خاک به هر روزه رو باطل میکنه بره باطل میکنه باطل میکنه امدی که نبوده زنده داشت خودم رو سفتاره چیر برن کک فرار میکنه و رحمان به دنبالش میره اتاق حرسی نجاد اون باز دوباره داره به رحمان و مش میده حالا نوبت یا برکات سنگینه ناک اوتش نکنه ناکدان رو شاخشه البته اگه مربیش بذاره حیات خانه رحمان رحمان آمنه تو حیات هستن رحمان داره سیب میخوره آمنه یه دستش سیب سرخه و دست دیگرش همون کتابی که تو کنفرانس بهش دادن جولیت آمینه تو چپ دستی؟ آره اشکلی داره؟ ای با خدا مرگم بده چپ دستی اگه روز قیامت نامه اعمال تو دست راست بدن یعنی که میری بهشت هشت اما اگه دست چپت بدن؟ یعنی جهنمی هست بیا جا ته از فرم مادر شما که میگین منظور از این آلیه چیز را دیگر با... به سیب سرخی که دستش رو نگاه میکنه همینطور آروم و ساکته اتاق هر از <تصال> حالش چطوره طرفه ممدل کلی هم باشه الان باید دراز بتراز کفر گفتنه باشه غمگین <تصال> شده تنها که بود تناترم شده مالا میشینه گوشه با کتاب میخونه خیلی که دل دم داشته باشه تلویزیون نگاه میکنه شاب خالهه رحمان به جز رحمان همه نشستن و دارن فیلم تماشا میکنن و میوه میخورن آمنه گریه میکنه ککب با دلسوزی بهش نگاه میکنه خالم گریهش گرفته رحمان میاد و امیق به چهره زنش خیره میشه و چون به اسلام در کسی این تهمت به ما نبه که اینا که تو مسلمان اینجاش که گریه نداره مادر. آی من قبیله. برای من دارست. ما اینجوش هم گریه داره است. ماشاءالله مسلمانی، این چه است که به ایمان خیش میکنی که اگر تو مسلمان یاد پدرداری او این گم برنج پیش یافتم نمی فهمیدم اصلا نمی چشه روز خیابان آمین تنها لابلای جمعیت را میرو تو ذهنش میگه من تنها هستم رحمان تنها کنار تو کنار خانوادت کنار مردم که شهرند به مهربانی پاکی کاش می چه قدر بتونه از مندم رخمت من. تا برایت سخن بگویم با تو درد دل, دل کنم از تو در باره رندی بپرسم تو برایم بخانی ای برندام مکنی زاهدی پاکیزه سرشت و من برایت بخونم شعر رندان گفتنم حوث است ریزگاه بگه دارید لطفان آمنه پیاده میشه بهش روز خانه رحمان آمنه تو دستشوی اوک میزنه مادر و عمه و خاله و کوکب و میمنت هم فالگوش فایی زدن رحمان از پله ها میاد پایینو به اونا نزدیک میشه آماده چی داری داریم میکنیش؟ از رو بوس می کنه و میاد بیرون و با تعجب به من نگاه می کنه. اتفاق اتفاقی افتاده؟ نه چه اتفاقی؟ کولورم رفت. حالا خوبه، اتفاق... همینی جونم. تارگیتی نداری، علف شنگم. چرا این تحوم؟ می خوای برای دابقه‌ن درست کنم؟ یا شیر اثر؟ من خیلی خوب هستم. چرا نگران هستی؟ نگران نباشی؟ من قلبم پر تو دهنم. کوکورزیمون داره میاد ما دست می‌ذاریم رو دست. رحمان جان کاکلزری یعنی چی؟ کاکلزری یعنی پسر نوزاد پسر خالی جان از کجا می دوند فرزنده ما پسر است؟ خانم ایرانی سونگرافی سر خودن هم چشماشو یه عشقی داره نگات که بکنن متوجه میشن کاکل کاکلزریه یا ناسبری رست میگی؟ بله روز مطب دکتر زنان آمنه روی تخت دراز و دکتر از شکم اشتری سونگرافی میکنه و با زبان فرانسه با امین حرف میزنه آنکو قان کنار میز دکتر به انتظار نشسته هستیم عکس بیرون میاد دکتر اونو میکنه و برمیداره و با دقت نگاش میکنه قیافی دکتر در هم میشه انگار پشکلی هست دکتر میگه؟ متاسفم یه مشکلی وجود داره چه مشکلی؟ پرکلاپسی خانمتون مبتلا به پرکلاپسی شدن این بیماری اسم دیگش مسمومیت حاملگیه حالا این که میگه خطرناکه هم برای مادر هم برای جنین در طی دوران بارداری تورم تشنج و اضافه وزن شدید برای مادر و خطر سق برای نوزاد وجود داره برای نوزاد چرا؟ افته پروتین از فشار خون مادر میتونه روی فشار خون من ندارم کم کم مبتلا های شد. من من چه باید بکنم؟ حاقه مننویستا که دو دکتر چی میگه؟ آمنه سرشو پایین می و میره تو فکر. دکتر مایوس نگاش میکنه یعنی باید بچه را رو بندازه روز حیات خانی رحمان ای سلام داداشم بودو میکنه آمنه و رحمان میان تو همه آمنه رو دورش کردن و میبرنش چیکار باید میکردم جوری باید این خبره بعده بهشون میدادم؟ کوکب که انگار فهمیده یه اتفاقی افتاده. یه از رحمان میپرسه که چی شده اما رحمان جوابی نمیده سونگرافی هم دستشه. چند قدم برمیده و میسته رحمان؟ آمنه تنها روی تخت دراز کشیده و خوابه از پایین صدا میاد از تخت بلند میشه از پله ها آروم پایین میره پایین قوایی <P2> همه پایین پله ها نشستن مادر طبق معمول بیهای نشسته. خالو می‌ماند چونه‌هاشو ماساژ می‌ده. نه خیلی از این همه دوستین همه دوست من معرفت کنم عروف ناقص با سما مورده خب زن ناقصه آمنه با تأسف به اونا نگاه میکنه مادر نفس نفس میزنه و میمنت میخواد بهش آب بده آمنه غمگین به نقطه خیره میشه میره تو فکر روز هزار بار از خود نپارسیدم آیا من مقصرم؟ در خانه در بیمارستان و حتی در روزهای بعد در اداره آیا من مقصر بودم و هرچه بیشتر میپرسیدم کمتر به پاسخی میرسیدم بیمارستان آمنه روی تخت دراز کشیده پرستار که پرونده شما رو میکنه کوکب به آمنه نزدیک میشه و با محبت دستش رو نوازش میکنه و آمنه فقط نگاش میکنه. روز خانه رحمان. آمنه در خونه رو باز میکنه و میاد تو. به طرف پله ها میره. صدایی میشنوه. به طرف اتاق میره. دم در بیسته. مادر عمه خاله میمنه و کوکپ دور میز نشستن و از روی عکس و آلبوم برای رحمان دختر انتخاب میکنن وای عمه چه لبای ای چی میگی دختر همه کلی خرج میکنن که لباشونو بکنن ایریختی والا به خدا این کارا لازم نیست اصلا هنوز که چیزی ثابت نشده بعدم کی گفته این دکتر رو همیشه درست میگن چی چی ثابت نشده بخاله دق بدی بچه‌مو بو زگ نمیر بهار میاد خوبه والله هیکل به این گندگی نمیتونه یه بچه سالم بزاد اون بلو خما میکشه یه جوری به ما نگاه میکنه انگار معصیتکاری نیستین شیطان میگه بلشو دهنشو رو بابا بز بابینا مگر تو نبودی که اصرار داشتی اون زریدا همکلاسی دو بگیری با تو بگیری واسه خان داداش اون موقع داداش احمان مجرد بود و مجرد و غیر مجرد نداره بچم بچه میخواد نمیخواد نسل کبلایی سلیم صاحب مذهب منتظر بشه منتظر بشه کلوپاتا ام خانم همینو گفت دیگه اصلا ما من میگم همین زریخ خوبی دیگه امین دونین که اونا متوجه بشن نگاهشون میکنه. تو فکر میره قمگین میشه روشو بر میگردونه گرفته به نقطه خیره میشه و اشک میریزه و تو ذهن خودش انگار یه تصمیمی میگره ما آزموده در این شهر بخت خیش برون کشید باید از این برده بختمش. نمای بیرونی خانه رحمان دمدمای صبح هوا تاریکه چراغ خاموشه اتاق رحمان و آمنه آمنه شدور سیاه به سر بلا سر رحمانی ایستاده تکه کاغذی دستشه روی رحمانو میکشه آروم ساک به دست از پله ها میاد پایین دنگار میخواد خونه رو ترک کنه در حیات پشتی رو میبنده بو میاد بیرون از کوچه رد میشه به خیابون میرسه تاکسی میسته و بگ میزنه راننده ساکش رو میداره و تو صندوق عقب میذاره آمنه عقب سوار میشه تاکسی رو میفته حالا دیگه روز شده راننده که اونم خیلی شبیه رحمانه از توی شیشه جلوی ماشین به آمنه نگاه میکنه راننده سیگار میکشه آمنه تو فکر و گریه میکنه آمنه عشقش رو پاک میکنه راننده دوباره به آمنه نگاه میکنه واقعیت شاب ما تو همین محله رو خشت افتادیم. قرار مترا وسط درمی محله رد فرودگاه اونم چی بسیار ساعته اون وقت هر ساعت شبانه روز وسیله عیابزه ها پرامه. راننده دستشو مشت میکنه و پوکی ماهرانه به سیگارش میزنه آمنه همچنان ناراحته. تابلوی فرودگاه مهراباد و فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه ها میبینیم راننده انگار به اون سمت رفته ناراحت میکنه اگه ناراحت میکنه خاموشش کنم همشیده خیر بگذارید بخانم من نظام را دوست دارم نظامی نیست عباس خادریه این کاله نظامی بوده یا نبوده حقیقتش من خبر ندارم ولی خیلی آتم شب نمای بیرونی خانه رحبان چراخا روشنه چراخا خاموش میشه انگار همه خوابیدند اتاق رحمان رحمان با پلیبر و شلور و کفش روی تختش دراز کشیده و خوابیده. صدای گریه میاد رحمان بیدار میشه پا میشه میشینه صدا انگار از تو حیات میاد رحمان در راه رو رو باز میکنه اون کوکبه که کنار درخت پرشاخ و برگ حیات هنها ایستاده و داره های های گریه میکنه رحمان به طرفش میره مادر از لای در نگاه میکنه اونم ناراحت و دلتنگه جایی قربونت برن این وقت شب زیر آسمون خدا گریه چرا وقتی که بدون خدا بزیرفت اولش دلگیر شدم بعدش دل شکست آخرشم دلتک این شب رو نامشولوی سجادم پیدا کردم هم بیدم پازم شد خصابت کرد دادش از وقتی گرفته دیکی کشن قلبم خالی خالی شده خیلی از این خونه ندید با همه خوب بود ولی یک کف دست خوبی نصیبش نشد الان یه چند وقت پیست هر نمازم میشه نماز هممون عادت کرده اونی از خواب پیداره میکنه چی نوشته تو حلالمون کرده و حلالیت طلبید نوشته ایران براش پر از خاطرهای خوشه نوشته رو خیلی دوست دارم به اسم شما که رسیده یه قدر اشک چگیده رو اسمت حرفی از نیست مصرهی بیتی قزلی ما آزموده این شهر بخته بیرون کشید باید از این برد رخته خوش بود و براش میخوندم بله که شهر بی تو مرا حبز میشه بابا رو یه کو بیاباند. در این گوش کوکم عطلوی میخواد بره دنبال آمینه مادر ناراحت مدید <تصفيق> روز باند فرودگاه بیروت. هواپیما آروم میشینه روز جلوی رستوران آمینه رحمان و جان پشت در رستوران ایستادن رستوران تعطیله اون دوروبرم برم هیچ خبری نیست رحمان و جان توی ماشین هستن از خیابونا میگذرن شب جلوی در آپارتمان آمنه هر چیزایی هی میزنن هیچ کس در براشون باز نمیکنه روز مسجد زنا سفید پوش به طرف مسجد میرن رحمان دنبال آمنه میگرده نمای بیرونی مسجد هیچ کس نیست همه داخل مسجد نماز میخونن شب، داخل ماشین. رحمان به اطراف نگاه میکنه و ژان سکوت رانندگی میکنه. همون شب، جلوی در خونه آمنه، رحمان ایستاده و ژان زنگ میزنه، اما هیچ خبری نیست. راهروی سالن کنفرانس. رحمان و ژان از یکی از اعضای کنفرانس سراغ آمنه رو میگیرن. به به پورسیر بنتو جوبیل پر کوا بنتو جوبیل پسکه لیا میگه انجومن چند شاو بزده تو بنتو جوبیل سور سیدا برای بخش. اگر اخمان. خمال منو ببخشی که نمیتونم بیام جنوب اما برای تاکسی گره جان جان دل بنتو جوبیل جان کنار دکه ایستاده و اطلاعات میگیره و به طرف رحمان میره. هم رو بغل میکنن و خدافظی میکنن. رومز راننده تاکسی در حال زمزمه کردن آهنگیه بارون میاد و برف با کن رحمان عقب ماشین نشسته و ناراحته و تو فکره. راننده همینطور به زبان خودش میگه و میخنده. رحمان از پرحفی راننده کلافه شد و آه میکشه و به بیرون نگاه میکنه. رحمان تو خودش و گریش گرفته تاکسی از پیچ میگذره روز رحمان از ماشین پیاده شده و کنار خرابه استاده راننده تاکسی دنده عقب میگیره و میره رحمان از کوچه میگذره که تمام خونه هاش در اثر جنگ به ویرانه تبدیل شده فقط چند تک درخت سالم مونده. رحمان لحظه میایسته و بعد با گام های بلند و سری از میان خرابه ها میگذره مدرسه ویران شده ای میبینه صدای بچه ها تو ذهنش میپیچه نه انگار صدا واقعیه به طرف صدا میره آب عکس زنی روی زمین افتاده و شکسته صدا نزدیکتر میشه به طرفش میره مسجد بزرگ سفید گنبدی شکلی اونجاست. داخل مسجد دختران و پسرهای حدودن ده دوازده ساله در چهار ردیف نشستن کتاب رولشونه در حال خوندن هستن آمنه اونجاست منطای گشد قهوهی پوشیده و روش یه پانچ قرمز پوشیده بارداره هشت نه ماهی به نظر میرسه مغنه سفید زده و در حال درس دادن از کنار بچه ها رد میشه بخشتم. شقاقا بینه ما فبعثو من اهلی، و حکمن من اهلها من رحمان رو باز میکنه آمنه رو میبینه با ناباوری به آمنه نگاه میکنه آمنه پشتش به رحمانه چشمای رحمان پر از عشق میشه آمنه یهو چشمش به رحمان میفته رحمان بالاخره اسمم درست صدا کردی خیلی تمرین کردم که بگم رحمان عشقای رحمان تو تون سرازیر میشن یولید آمنه متبستین به طرف رحمان میاد رحمانم به طرف اون میاد رحمان رحمان شرمنده است بسم الله, الله. رو به بچه ها میگه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم و ان خفتم شکاکان شکاک رحمانم با چشمه اشکالود اما خوشحال با بچه ها تکرار میکنه بسم الله الرحمن الرحیم روز جده تابلو جهت بیروت و نشون میده راننده تاکسی تنها به سمت بیروت میره هواپیما از بیروت به مقصد ایران در آسمان پرواز میکنه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فیلم خسته نباشید با هم فیلم کتاب قانون به کارگردانی مازیار میری رو شنیدیم این برنامه حاصل زحمت این عزیزانه. جناب آقای حاجی نوروزی صدا بردار جناب آقای فرشاد آزرنیا تهیه کننده و بنده فریبا تاهری که اجرا و تنظیم این فیلم رو به عهده داشتم پیروز و سر بلند باشیم و خدایا رو نگهدارید